داستان دختر ملکه گلها روزی شاهزاده جوونی هنگامی که سوار بر اسبش از چمنزاری میگذشت به گودال عمیقی رسید او میخواست از کنار گودال رد بشی که از ته گودال صدای ناله‌ای شنید از اسبش بیاده شد و به طرف صدا رفت صدا صدای پیرزنی بود که خواهش میکرد اونو از گودال بیرون بیارند شادی خانم خم شده اونو بیرون آورد و پرسید که چطور این اتفاق براش افتاده پیرزن جواب داد پسرم من پیرزن فقیری هستم و کمی بعد از نیمه شب به طرف شهر راه افتادم تا صبح زود به اونجا برسم و تخم مرغهام رو بفروشم اما تو تاریکی راه رو گم کردم و تو این گودال عمیق افتادم اگه کمکت نبود تا ابد همینجا میموندم بعد شاهزاده به او گفت شما به سختی راه میرید سوار اسب من میشید تا شما رو به خونه برسونم کجا زندگی میکنید پیرزن جواب داد اونجا نزدیک جنگل توی اون کلبه کوچیکی که اون دور دورا میبینی شاهزاده اونو سوار اسب کرد و خیلی زود به کلبه رسیدند پیرزن پایین اومد و به شاهزاده گفت یه لحظه صبر کن میخوام چیزی بهت بدم و وارد کلبش شد اما خیلی زود برگشت و گفت تو شاهزاده قدرتمندی هستی در زم قلب مهربونی هم داری باید به تو پاداش داد دلت میخواد زیباترین دختر دنیا همسرت بشه؟ شاهزاده جواب داد البته که دلم میخواد پیرزن ادامه داد زیباترین دختر دنیا دختر ملکه گلهاست که اسیر یه اجدهاش شده اگه دلت میخواد با او استواج کنی؟ اول باید آزادش کنی در این کار من به تو کمک می من این زنگوله کوچیکو به تو میدم. اگه اونو یه بار به صدا در بیاری پادشاه اقاب ظاهر میشه. اگه دو بار به صدا در بیاری پادشاه روباها به سراغت میاد و اگه سه بار به صدا در بیاری پادشاه ماهی ها را خواهی دید و اگه به مشکلی برخوردی اونها کمکت خواهند کرد حالا برو امیدوارم موفق باشیم او زنگوله رو به مرد داد و ناگهان همراه کلبش ناپدید شد طوری که انگار همه آب شدند و به زمین فرو رفتند این اتفاق باعث شد شاهزاده احساس کند با یک پری مهربونی صحبت میکرده و زنگوله کوچیک رو با دقت تو جیبش گذاشت و به خونه رفت او به پدرش گفت که میخواد دختر ملکه گلها رو آزاد کنه و تصمیم گرفت فردا حرکت کنه و دور دنیا رو برای پیدا کردن دختر بگرده به این ترتیب صبح روز بعد شاهزاده سوار اسب چابک شد و خونه را ترک کرد او یه سال تمام سرگردون بود اسبش از شدت خستگی مرد خودش هم سختیهای زیادی کشید اما هیچ سرنخی از کسی که دنبالش میگشت پیدا نکرد بالاخره یه روز به کلبه رسید که پیرمردی جلوی اون نشسته بود شاهزاده از او پرسید شما نمیدونید اجههایی که دختر ملکه گلها رو زندونی کرده کجا زندگی میکنه؟ پیرمرد جواب داد: نه نمیدونم اما اگه مسیر مستقیم رو بری یه سال دیگه به کلبه پدرم می رسی، او حتما جوابتون می تونه بده. شاهزاده از او تشکر کرد و یه سال دیگه به سفرش ادامه داد تا اینکه به کلبه کوچیکی رسید که مرد بسیار پیری در اون زندگی می کرد. او همون سوال قبلی رو پرسید پیرمرد جواب داد نه؟ من نمیدونم اجده ها کجا زندگی میکنه اما یه سال دیگه به همین مسیر ادامه بدی به کلبه پدر من می رسی. اون می جواب تو رو بده و به این ترتیب شاهزاده یه سال دیگه هم همون مسیر رو ادامه داد تا به کلبه سومین پیرمرد رسید. او سوالی را که از پسر رو نو او پرسید از او هم پرسید اما این بار پیرمرد جواب داد. اجده ها بالای اون کوه زندگی میکنه و زمان خوابیدن اون تازه شروع شده. او یه سال تموم بیدار و سال بعدش میخوابه اما ای دنبال دختر ملکی گلها میگردی به کوه دوم برو مادر پیر ها اونجا زندگی میکنه هر شب مهمانی برپا میکنه که دختر ملکی گلها هم تو اون شرکت میکنه شاهزاده به کوهستان دوم رفت چشمش به قصری از طلا افتاد که پنجره هاش از الماس بود او دروازه بزرگی رو باز کرد و وارد حیاط شد اما هنوز چند قدم جلوتر نرفته بود که هفت اجدهها به طرفش حجوم آوردند و پرسیدند. چی میخوای؟ شاهزاده جواب داد. من تعریف زیبایی و مهربونی مادر اجده ها رو زیاد شنیدم. اومدم بهش خدمت کنم. این چاپلوسی تاثیر خوبی روی اونها گذاشت. بزرگترین اجده ها گفت پس با من بیا تا تو رو پیش اجده های مادر ببرم. اونها وارد قصد شدند و از دوازده تالار باشکور که همه از طلا و لماس ساخته شده بودند گذشتهاند در تالار دوازدهم اونها اجده های مادر رو دیدن که رو تختی از الماس نشسته او زشتترین زن دنیا بود و بدتر از اینکه سه سر داشت ظاهر او و صدایش که شبیه قارغار چند کلاق بود شاهزاده رو خیلی شوکه کرد زن از او پرسید چرا اینجا اومدی شاهزاده فوری جواب داد من اونقدر تعریف زیبایی و مهربونی شما رو شنیدم که آرزو داشتم به شما خدمت کنم اجده های مادر گفت بسیار خوب اگر میخوای به من خدمت کنی اول باید مادیان منو سه روز به دشت ببری و مواظبش باشی اگر روزی او رو صحیح و سالم برنگردونی ما تو رو میخوریم. شاهزاده قبول کرد و مادیان رو به دشت برد اما به محض اینکه به چمنزار رسیدند اس ناپدید شد، تلاش مرد جوان برای پیدا کردن حیوون بینتیجه بود و بالاخره او با ناامیدی روی یه سنگ بزرگ نشست و سرنوشتشون نفرین کرد همانطور که نشسته بود و به فکر فرو رفته بود ناگهان اقابی رو بالای سرش دید و بیاد زنگولش افتاد اونو از جیبش بیرون آورد و یه بار به صدا در آورد یه لحظه بعد صدایی در آسمون به گوش رسید پادشاه ها کنارش به زمین نشست پرنده گفت میدونم از من چی میخوای تو دنبال مادیان اجدهها میگردی که در ابرها پنهان شده من و اقابهای دیگه میریم و اونا برات میاریم. پادشاه ها این حرف و زد و به پرواز درومد نزدیک غروب شاهزاده صدای بلندی در آسمون شنید و وقتی سرشو بلند کرد دید صدها عقاب مادیان رو به طرف اون مییارند اونها جلوی او به زمین نشستند و مادیان را به او دادند. شاهزاده هم اسب را به خونه برد و به اجده های مادر تحویل داد. اجدهها از دیدن او خیلی تعجب کرد و گفت تو امروز موفق شدی از مادیان من خوب مراقبت کنی. جایزت اینه که اجازه میدم امشب در مهمانی من شرکت کنی. او لباسی مسی به او داد و او رو به تالاری برد که در اون تعداد زیادی اجده های زن و مرد نشسته بودند. دختر زیبای ملکه گلها هم اونجا بود. پیراهن او از لطیفترین گلها دوخته شده بود و چهرش به زیبایی گل سرخ بود. شاهزاده کنار او نشست و آروم در گوشش گفت من اومدم تا تو رو نجات بدم. دختر زیبا گفت اگه موفق شدی مادیان را رو سه روز نگه داری به عنوان پاداش. از اجدهای مادر بخواد که کره مادیان را به تو بده. مهمونی نیمه های شب به پایان رسید. و صبح روز بعد شاهزاده دوباره مادیان را به دشت برد. اما باز هم اسب ناپدید شد. این بار مرد زنگوله را به دست گرفت و اون را دو بار به صدا در یک لحظه بعد پادشاه روباها به اونجا اومد و گفت: میدونم از من چی می همین الان همه روبه ها رو جمع می و با هم مادیان را که در تپه پنهان شده پیدا می کنیم پادشای ها این حرف زد و به راه افتاد و نزدیک غروب هزاران روبه مادیان رو برای شاهزاده آوردند او سوار بر اسب به خونه برگشت و اجده های مادر این بار لباسی از نقره به او داد و اونو به مهمونی رقص برد دختر ملکه گلها از اینکه که اونو صحیح و سالم میدید خیلی خوشحال شد و در لحظه مناسب در گوشش گفت اگه فردا هم موفق شدی در دشت منتظر من بمون. بعد از مهمونه میتونیم با کره اسب پرواز کنان از اینجا بریم. روز سوم شاهزاده مادیان رو به دشت برد و او باز هم ناپدید شد. بعد شاهزاده زنگوره رو به دست گرفت و او رو سه بار به صدا درآورد. یه لحظه بعد، پادشاه ماهی ها ظاهر شد و گفت میدونم از من چی میخوای. الان همه ماهی های دریا رو جمع میکنم و از اونا میخوام مادیان رو که در رودخونه خونه پنهان شده به تو برگردونند. نزدیک غروب مادیان به او برگردونده شد. وقتی شاهزاده اسب را به خونه برد اجراهای مادر گفت تو جوون شجایی هستی و من تو رو به عنوان خدمتکار شخصی خودم استخدام میکنم. اما بگو قبل از شروع کار چه پاداشی میخوای شاهزاده خواهش کرد که کره مادیان را به او بدهند و های مادر فوری قبول کرد و همراه آن لباسی از طلا هم بهش داد. چون از وقتی شاهزاده از زیبایی او تعریف کرده بود، اجدها عاشق شده بود. به این ترتیب او اون شب با لباس طلاییش به مهمونی رفت. اما قبل از تمام شدن جشن، مخفیونه خودشو به استعب رسوند و سوار کره اسب شد و به دشت رفت و منتظر دختر ملکه گلها موند. شب از نیمه گذشته بود که دختر زیبا خودشو به اونجا رسوند و همراه پسر سوار اسب شد و بعد شاهزاده و دختر در آسمون به پرواز در اومدن تا به سرزمین ملکه گلها رسیدند. اما اجداها متوجه فرار اونها شدند و برادرشون رو از خواب یه سالش بیدار کردند او خیلی عصبانی شد و تصمیم گرفت قصر ملکه گلها رو محاصره کنه اما ملکه با انبوهی از گلها اطراف سرزمین خودشو و پر کرد و ساغه های این گلها به آسمونها هم میرسید و هیچ هیچکس نمیتونست به زور وارد اونجا بشه وقتی ملکه گلها فهمید دخترش میخواد با شاهزاده ازدواج کنه به مرد جوون گفت من با خوشحالی به ازدواج شما رضایت میدم اما دختر من فقط میتونه در طول تابستون کنار تو باشه. زمستون وقتی هوا سرد شد و برف همه جا رو میپوشونه او باید به قصر زیرزمینی من بیاد و اونجا بمونه. شاهزاده این شرط رو قبول کرد و عروس زیباش رو به کشورش برد و در اونجا جشن با شکوه و مجللی برگزار کرد. زوج جوون به خوبی و خوشی با هم زندگی کردند. تا این که زمستون از راه رسید و دختر ملکه گلها خداحافظی کرد و پیش مادرش برگشت با گرم شدن هوا و رسیدن تابستون دختر دوباره به کنار همسرش برگشت و زندگی پر از شادی اونها از سر گرفته شد و تا زمستون بعد ادامه پیدا کرد زمستون باز هم اونها از یکدیگر جدا شدند این رفت و آمد تا آخر عمرشون ادامه داشت و با وجود اون همیشه در کنار هم خوش و شادمان بودند. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسان ای صوتی نشانی کانال تلگرامی نقط می مهران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 نقط COم مهران دوستی.بلگva.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد بستانی